به نام خدای یگانه مهربان سلام این هفته افسانه ایرانی پهلوان حمزر براتون نقل میکنم. کنم برگرفته از کتاب سهای مردم به گردآوری پژوهشگران پژوهشکده مردمشناسی سازمان میراث فرهنگی در روزگاران رو گذشته در ایران زمین پهلوانی به نام همزه زندگی میکرد که بی نهایت ثروتمند و دارا بود اما به مرور زمان تمام ثروت و دارایی خودش را از دست داد چرا الان میگم چون هم تمکار شده بود و هم ناسپاس و ناشکر همزه اونقدر به فقر و فلاکت رسید که دیگه حتی به نون شب هم محتاج بود این همزهٔ افسانه ما پسری داشت به نام ابراهیم که باهوش بود و زرنگ هرچه روزگار میگذشت وضع پهلوان همزه بدتر و بدتر میشد تا اینکه روزی زنش بهش گفت همزه ما تو کی باید توی این وسیت زندگی کنیم یه کاری بکن مرد این هم شد زندگی آه، در بسات نداریم که با ناله سودا کنیم. همزه گفت میگی چیکار کنم زن ها؟ زن که انگار از قبل درباره این موضوع فکر کرده بود فورا جواب داد خب، از اینجا مهاجرت کنیم بریم یه جای دیگه شاید شاید خداوند دری بر باز کنه و به نوایی برسیم. پهلوان همزه نگاهی به زن و پسرش انداخت کمی فکر کرد و بعد اعلام کرد باشه فردا از اینجا میریم فردای اون روز بعد از طلوع آفتاب پهلوان همزه به همراه زن و پسرش به راه افتادن. بعد از پیمودن چند فرسخ همگی گی و کوفته شدند و دیگه نای حرکت نداشتند. همزه پسرش ابراهیم رو که از خستگی نفسش به هنوهن هن افتاده بود روی دوشش گذاشت و دوباره به راهشون ادامه دادند. اونا رفتن و رفتن تا به قلعه سفیدی رسیدن. پهلوان همزه با خوشحالی گفت خدا رو شکر، خدا رو شکر بالاخره به جایی رسیدیم حتما توی این دژ نون و آبی پیدا میشه زود باشید، زود باشید باید به اونجا بریم و یک کمی هم استراحت کنیم جلوتر که رفتن دیدن قلعه یه در آهنی بزرگ داره و راه آبی هم در کنار در قرار داره پهلوان همزه با نیزه خودش خاکهای دور راه آب رو کنار زد و از اونجا وارد شد و در قلعه رو باز کرد و به زن و دو پسرش هم گفت چرا واید زود باشین به تو؟ بعد از اینکه همه وارد قلعه شدن یکی یکی تموم اتاقهای دژ رو گشتن اما کسی رو اونجا ندیدن پهلمان که تجربه زیادی داشت به زنش گفت من حتم دارم این قلعه متعلق به راه زنا باشه زن با وحشت گفت رازن ها پناه بر خدا پهلوان همزه و گفت <تصفيق> چیه؟ میترسی کیسه های تلامون رو ببرن؟ بعد زنش رو به آرامش دورد کرد اونا باز جاهای دیگه قلعه رو جستجو کردن تا به انبار توشه قلعه برخورد کردن اونجا انبار اقسام خوراکی ردیف به ردیف چیده شده بود پهلوان با دیدن اون همه خوراکی با خوشحالی گفت رزق و روزیمونم رسید حالا هرچی دوست دارین بخورین و کم نگیرین خلاص همگی با ولع تموم شروع کردن بخوردن پهلوان همزه درست ترزده بود، اون قلعه متعلق به چهل نفر دوز بود و برنامه کاری اونها به این صورت بود که چهل روز دزدی کردن و مواد خوراکی جمع شده رو به قلعه می آوردن. مدتی گذشت روزی ابراهیم پسر پهلوان همزه که در قلعه مشغول گشتن بود به دری برخورد کرد که چهل اسب تنومند در اونجا بود ابراهیم فورا نزد پدر رفت و اون که دیده بود برای اون کرد چند روز بعد ابراهیم که حسلش سر رفته بود به پدرش پیشنهاد کرد که به شکار برن و آهو یا کرکی رو شکار کنند پهلوان همزم قبول کرد و به ابراهیم گفت پسرم به داخل استبل برو و هر کدوم از اصفایی رو که میخوای انتخاب کن و بیار تا به شکار بری ابراهیم هم فوراً به استبل رفت و چند دقیقه بعد با اسب سفید تنومندی نزد پدر برگشت و اونا به شکار رفتند و اتفاقاً آهوی چاق و را هم شکار کردند و به قلعه بازگشتند چند روزی از این ماجرا گذشت و پهلوان همزه دوباره هوس کرد به شکار بره بنابراین به پسرش ابراهیم گفت پسرم برو یه اسب دیگه بیار تا با هم به شکار بریم شاید این دفعه گور خر یا حیمون بزرگتری شکار کنیم ابراهیم دستور پدر رو اجرا کرد و اسبی آورد و با هم به شکار رفتند و گور خر بزرگی رو شکار کرد و به قلع آوردند روزی از روزها زن پهلوان همزه آتیش کرده بود و داشت غذای شام رو آماده میکرد. در این موقع دزدها به نزدیکی های قلعه رسیدن و دود آتیش رو که دیدن فهمیدن که افرادی توی قلعه هن. دزدا گفت اگه همه با هم وارد قلعه بشیم امکان داره که لشکر بزرگی در اون جا کمین کرده باشن. یکی از دزدا گفت بس باید چیکار کنیم؟ سردسته یه دوزده فکری کرد و گفت یکی از شما باید بره و سرگوش یاب بده یکی از دزدا لباس کهنهی برتن کرد و پیاده به طرف قلعه رفت در قلعه رو کوبید و مدتی منتظر شد تا اینکه زن محلمون در رو باز کرد و مرد رو که در لباس کهنه دید دلش به حال اون سوخت و گفت اگه خسته ای میتونی به داخل قلعه بیای و مقداری غذا بخوری. مرد گفت: خدا خیرت بده خواهر. هم گرسنه‌م هم خسته. آخه راه زیادی اومدم. مرد وارد قلعه شد. بعد از خوردن غذا از زن پرسید: بزرگ شما چیه؟ زن گفت: شوهر من پهلوان همزه هست که الان اینجا نیست و با پسرم رفته مرد با شنیدن اسم پهلوان همزه با تعجب پرسید پهلوان همزه؟ زن هم با تعجب پرسید بله مگه مگه تو اونو میشناسی مرد با دست با چیگی گفت نه نه, نه نه نه نه و با خودش گفت پس پهلوان همزه اینجا است. توی این قل بعد دستی به صورتش کشید و زیر لب گفت مصدای سیلی محکمی که به من زده تو گوشمه مرد با مرموزی خاصی گفت چطور شد که وارد این قلعه شدین چون این قلعه متعلق به کسی دیگه ایه. بعد زن پهلمون هم تمام ماجرای زندگیشون رو برای مرد تاریف کرد مرد دوست بعد از اینکه فهمید پهلوان همزه و خانوادش توی قلعه هستن از زن پهلوون پرسید اگه الان فردی میرو من و قوی بیاد و بگه که این قلعه مال منه اون وقت چی میکنیم؟ زن جواب داد اگه اون فرد باسخابتی باشه همینجا میمونیم و اگه فرد حریصی باشه قلعه رو ترک میکنیم و به راه خودمون ادامه میدیم مرد دوست؟ با زیرکی خاصی گفت این قلعه مال ماست و ما چهل نفر دزد نیرو که اگه الان بقیه اونها وارد قلعه بشن اول تو و بعد هم پسر و شوهرک رو می هنوز حرف مرد تموم نشده بود که آثار ترس و وحشت توی چهره زن نمایان شد و مرد از فرصت استفاده کرد و ادامه داد نترس نترس نترس اگه کاری که میگم انجام جان بدی هیچ اتفاق بدی برای تو نمیفته زن با نگرانی گفت چه کاری چه کاری؟ مرد گفت تو باید شوهرت رو دستگیر کنی و بعد اونو به بالای قلعه ببری و آتیش روشن کنی تا ما با خبر بشیم اون وقت ما به داخل قلعه میاییم شوهرتو میکاشیم و تو میشی رئیس این قلعه یا بهتر بگم رئیس همه ما زن با وحشت گفت ولی ولی من نمیخوام شوهرم کشته بشه مرد شونه بالا انداخت و گفت میل خودت بس باید خودتو آماده مردن کنی یا خودت یا شوهرت کدوم زن از سر ترس گفت باش باشه باشه هرچی شما بگید مرد با خوشحالی گفت ها عجب خانوم رئیس حرف گوش کنی باشه باشه من میرم تا بگم که آماده باشن تا هم یادت نره که باید چی کار کنی رئیس قلعه ما زن سری برلامت تصدیق تکن داد و مرد رفت تا هرچه زودتر ماجرا رو برای دوستانش بازگو کنه اما بشنوید از زن پهلمون همزه بعد از یک ساعت پهلمون همزه و پسرش به قلعه برگشتن پهلمون که آثار نگرانی و ترس رو تو چهره زنش دید علت و پرسید و زن هم با گریه تمام ماجرا رو برای شوهرش تعریف کرد پهلمون همزه کرد کرده گفت <تصفيق> نه ترس زن نه ترس من در آن واحد توانایی مبارزه با 20 نفر رو دارم، نترس زن با نگرانی گفت، ولی اونا چهل نفرن؟ پهنو امزه گفت، من با همه شون می جنگم. نگران نباش. من هنوز قدرت و توان کافی دارم. زن گفت، اگه اگه اینطوره که میگی پس برو چمنده هری رو بیار تا به پشتت ببندم، ببینم هنوز زور و قدرتت مثل قدیماسی یا نه؟ همزه نگاهی به زنش انداخت و گفت شک داری؟ زن مکسی کرد و گفت یه کمی همزه برای اینکه به زنش ثابت کنه هنوز زور و توان و قدرت خودش رو حفظ کرده رفت و کمند هری رو. همزه کمند حریر رو به زن داد و گفت اونو محکم به پشتم ببند زن این کار رو کرد همزه تکونی به خودش داد و در عرض چند ثانیه کمند رو پاره کرد زن کمی فکر کرد و گفت خب این است کمند تو چه چی چیزی رو نمیتونی پاره کنی اونو امتحان کنیم همزه گفت من همیشه نسبت به موهاگ بلندم ناتوان بودم اگه موهام رو به مچ دستم ببندی، نمیتونم اونو پاره کنم. فقط همین، وگرنه میتونم. زن حرف شوهرش رو قطع کرده گفت، شوخی میکنی. تو زنجیر آهنی و کمند حری رو پاره میکنی. اون وقت به یه تار موی خودت نادوانی؟ نه نه، نه تو شوخی میکنی. همزه گفت، امتحانش مجانیه و هیچ ضراریم نداره. بعد یه تار از موی سر خودش رو کند و اون رو به زن داد و زن شست دستای همزه رو از پشت بست و همزه هرچی زول در توان داشت به کار برد ولی نتونست تار موش رو پاره کنه. زن بلا فاصله پرسید خب پهلوون پنبه نگفتی موی تو با چی بریده میشه ها؟ همزه گفت فقط با شمشیر خودم در این موقع زن خنده موزیانه ای کرد و به بالای غلعه رفت و آتیشی روشن کرد و دود اون به هوا بلن شد. طولی نکشید که چهل دزد وارد غلعه شدن و به دور همزه خلقه زدن. همزه تازه فهمید که چه اشتباهی کرده. دزدا گفتن خب پهلبون همزه با اسارت چطوری ها؟ اون همزه پوس خندی زد و گفت اشکالی نداره. روزگار بالا و پایین زیاد داره یکی از دوزده به سر دستشون گفت خب حالا हلو... چجوری باید این پهلوان تمبرو بکشیم؟ ها. زن با شنیدن این حرف از کرده خودش پشیم شد اما کار از کار گذشته بود مدتی گذشت تا اینکه ابراهیم پسر پهلوان که در بیرون از قلعه مخفی شده بود نیمه های شب وقتی تمام دوزها در خواب بودند سراغ پدرش رفت و گفت پدرجان من اومدم که بهت کمک کنم همزه گفت بسرم زود باش برو شمشیرم رو بیار چون بجاز شمشیر خودم هیچ صلاحی دیگه نمیتونه مون رو پاره کنه پسر هم با احتیاط غلعه رو گشت و همه جا رو جستجو کرد تا بالاخره شمشیر پدرش رو پیدا کرد فورا موی پدر رو برید و پدر رو نچاد همزه پهلمون بعد از نجات شمشیر رو به کمر بست و به سراغ دوست ها رفت و اونا رو که در خواب فرو رفته بودند یکی یکی سر برید و بعد سراغ زنش رفت و گفت ای زن این بود جواب محبت هایی که این همه سال در حقت کردم چرا این کارو کردی ها؟ جواب بده زن میخواست خودش رو تبره کنه اما ناگهان پهلمون همسرش رو به ضرب شمشیر از پای در آورد و بعد به همراه پسرش ابراهیم به راه افتاد. مدتی که رفتن به سیاه چادری رسیدن. وقتی وارد سیاه چادر شدن مقداری غذا خوردن و از فرط خستگی خوابیدن. یه ساعت بعد صاحب سیاه چادر از راه رسید. نگاهی به همزه و پسرش انداخت و اونا رو به همون حال گذاشت و خودش هم در کنار اونها گرفت و خوابید. بعد از چند ساعت همگی از خواب بیدار شدند و صاحب سیاه چادر زن احوال پرسی رو به پهلوان همزه کرد و گفت پهلوان پهلوان من و اخلاق و زور و قدرتت رو زیاد شنیدم. من مشکلی دارم که فقط به دست تو باز میشه. پهلوان همزه پرسید چه مشکلی برادر؟ مرد گفت اخترمویی دارم که در روستایی دور از اینچا زندگی میکنه ما دلمون میخواد با هم ازدواج کنیم اما من ثروتی جز همین سیاه چادر ندارم و به همین علت امون با این ازدواج مخالفه و پیشنهاد جنگ به من داده اما من تنهام و توانایی و قدرت مبارزه با اونون ندارم حالا حالا به کمک شما احتیاج دارم همزی پرسید: «تا اونجا چقدر راهه؟ مرد گفت: «اگه با اسب بریم هفت روز و هفت شب طول میکشه. همزه به پسرش ابراهیم گفت، «پسرم: تو اینجا بمون تا من برم و کارم و انجام بدم و برگردم." به بعد همراه مرد به طرف روستای مرد نظر برافتادن. به نزدیکی های روستا که رسیدن، سپاه آماده مقابل رو دیدن که حشیارانه اونها رو میپاییدن. در این موقع مرد نامهی به اموی خودش نوشت که یا دختر یا جنگ. وقتی نامه به دست امو رسید خیلی اصابانی شد و فرمان حمله رو صادر کرد. همزه بعد از مدتی موفق به شکست سپاه شد و خودش به همراه مرد و دختر هموش به راه افتادن. اونا بعد از چند روز به سیاه چادر رسیده پهلون همزه سرگذشت خودش رو برای اونا تعریف کرد و دختر که دلش میخواست قلعه رو از نزدیک ببینه از پهلون همزه خواست که اونو پسرمونش رو به اونجا ببره و پهلون همزه هم اونا رو به قلعه بود و از اونها خواست که در قلعه بمونن و همگی با هم زندگی کنن بله قلعه ای که قرار بود زن پهلوان حمزه رئیس و سپه سالار اون بشه نصیب پهلوان حمزه شد و پهلوان حمزه بنوان سپه سالار قلعه سالهای سال در کنار فرزندش و مرد و دخترموش زندگی کرد افسانه ایرانی پهلوان حمزه رو براتون نقل کردم. برگرفت از کتاب قصه های مردم به گردآوری پژوهشگران پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی. افسانه ها عجیب و غریب اما زیبا و شنیدنی هن. اونها غم رو از یاد انسان میبرن و انسان با شنیدن افسانه ها گویی غم و اندوه و رنج هاش رو از یاد میبره. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالحپور ویراستار سویلا کریمی اجرا مهران دوستی صداوردار ستاره حمیدی تیه کننده زهرا عبدالله زاده ا افسانه دیگر بدرود